بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه اول اعوذ بالله السميع العليم من الشياطين الواسوسين بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صل الله على سيدنا و نبينا و شفايعنوبنا عبد القاسم محمد. و على أهل بيت الطيبين الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم. أجل معنا إلى يوم الدين. کردیم به اینکه امام فقط برای زعامت نیست، فقط برای اجراع قانون نیست، بلکه برای بیان قانون و برای حفظ مکتب از برداشت‌های غلطی که ظالمین می‌کنند یا از روی جهل و نادانی بعضی برداشت می‌کنند، این امام برای این کار که نگهدارنده دین و مبین دین و حافظ دین است این اصل قرازه اصلی امام اینه خب این اگر تا اینجا تمام شد پس بنابر این کلمه ای که امشب عرض می کنم این است به همون ملاکی که باید تیغمبر معصوم باشد به همون ملاک باید امام معصوم باشد چرا باید تیغمبر معصوم باشه بحثشیتون رو ببود خوندیم زیرا اگر پیغمبر گناه کند و عمدن خلاف واقع بگوید اگر پیغمبر خطاب و اشتباه کند و اشتباه کند حکام خدا را درست نرسونه به مردم نقض است و غرض خدای تعالی از بین میره غرض از دعست انبیا از بین میره فرستادن انبیاء لغو میشه باید یک کسی باشه البته تفصیلش که نمیخوام بگم تفصیل اسمت رو قبلا خوندین یک کسی باشه که از گناه محفوظ باشه از خطاب و اشتباه محفوظ باشه تا اون دینی که قرد از این دین بیان رفع اختلافات و بیان اقامه عدل و برای بیان تکامل، قانون تکامل دهنده انسان هاست این قانون درست به دست مردم برسه این اسمتی که مدرک بود برای این اسمتی که شرط بود برای انبیا عینا همین اسمت شرط برای امامم هست زیرا ما امام را حافظ مکتب میدانیم مبین احکام میدانیم رفع کننده برداشت های غلط و اشتباهی که از کتاب و سنت میدانیم اگر بشه امام معصوم نباشد همون اشتباه ها، همون غلط هایی که همه میکنن او هم میکنه اگر بنا بشه که امام معصوم از خطا نباشد همون اشتباهاتی که همه میکنن او هم بکنه مردم رو گمراه میکنه و شعر عصمت رو نمیخوام حالا فعلا بدم بنابراین از نتیجه‌ای که الان میگیریم عرض میکنیم همون گونه که پیغمبرون باید معصوم باشند احکام را از خدای تعالی صحیح بگیرن و به مردم صحیح برسانند اشتباه نکنن دروغ نگند، گناه نکنن قولن و عملن مصدق باشند دستورات خدا را و همون که قبلا دادیم عین همین مدرک در امامم اگر بنابشه امامی که مبین احکام است این عرض می شود کار باشه، گناهکار باشه، اشتباه کنه، صحب کنه اون مطلوب خدای تعالی به دست مردم نمی رسد و نقض قرزی که اونجا شده بازم می شود به اینجا که برسه کار مطلب شیعه دیگه تمام تمام کی می تونه معصوم رو تشخیص بده؟ غیر از خدایه تعالیه احدیده توانه بفهم کی معصومه از خطا و کی معصوم از گناه هم البته این حالا باشه بعدا ت معش رو از کرد ولی اونی که امشب تمه بحث می کنیمیم تی الله و تی و وسود و قولل امر میکن به این آیه استدلال کردن که باید اول امر معصوم باشه قول العام یعنی کسانی که اختیار امور به دست اونها صاحب منع باید معصوم باشه از کجاش در میان اطیع الله اطاعت خدا به چی اطاعت خدا به اینکه این دستوراتی که داده عمل بکنیم اطاعت خدا فلان چیز واجبه به جا بیارم فلان چیز حرام ترک کنم قولم معامله باطل نکنم با امثال اینم این اطاعت خدا اطاعت خدا معلوم آتی اور آتی اور رسول یعنی چی آتی اور رسول یعنی چی اطاعت رسول بکنی اطاعت رسول دیگه کدومه غیر از اطاعت خدا غیر از واجبات و محرمات اطاعت رسول کدومه اطاعت رسول غیر از واجبات و محرمات و الله اگر همون واجبات و محرمات بود که احتیاجی به گفتن دیگه نداشتمون اطی الله کافی بود اطی الله کافی بود عطی الله معناش همینه که واجبات رو عمل کنید محرمات رو ترک کنید دستورات خدا رو اجرا کنید اطی الرسل معناش چی؟ اطی رسول معناش همین است که هست یعنی عرض میکنم رسول حاکم بر امور مسلمین است و اگر امری کرد و د دوری داد و فرمانی داد عبدا کسی حق نداره از دستور او تخلف کنه اگر به یک کسی فرض مثلا نزمی کنم اگر رسول فواله والد دستور داد که مثلا فرض برماید در اون جنگ اهده کذایی یه دونه فرمانده معین که از سر یه درهی که مرکز حمله دشمن ها بود گفتن با پنجاه نفر معمول کرد فرمود شما اینجا بیستید حق ندارید از اینجا برید اگر ما شکست خوردیم یا غالب شدیم باید اینجا بیست این اطاعت رسول هم. فرمود اگر شکست بخوریم یا غلبه پیدا کنیم حق ندارید از اینجا قدمتون بردارید و تعبیر بنده ولیکن مسلمان ها آخوی جرایان مفصلی خضیه اوهود جمعیت مسلمان ها مثلی که 700 تا بیشتر نبود ظاهرا. جمعیتی کمی بود و خبر دادن پیغمبر که بعد از خضیه بعد مشرکین همه با هم دست یکی کردن و اومدن حمله کنند به مدینه پیغمبر با اصحاب مشورت کرد که ما تو شهر بمونیم یا بریم بیرون بالاخره تصمیم گرفت رسول الله و آله که برن از شهر بیرون کوه احد رو پشت سرشون قرار داد پیغمبر و از قضا و تم که تو ببنید و نیمه علی قتال پیغمبر رو توصیف میکنه ورمت اون وقتی که تو از شهر بیرون رفتی و مردم داری مرد تبدین کنی لشکرها رو مرد تبدین کنی او کوه احض رو پشترش رو که از اون طرف حمله نکنن یه کوه دیگر رو در کجا قرار داد فقط یه درهی بودیم و سر فرمودیم تن نفر موظفن که اینجا باشه حق ندارن حقیقت خب اینا قفل مشتن هرکت کنند، حرکت, کنن، حرکت نکردند لشکر مسلمان ها دو و کفار رو مغلوب کردند فرار کردند کفار با جمعیتون کم بود، فرار کردند ولی همین که این پنجاه نفر دیدند که لشکر مسلمان ها قلبه کردند و کافر داره هر فرار میکنه و این مسلمان هم که اینجا داشتند جنگی کردند شروع کردند اموال و اصله های کفار رو دارن جمعوری می کنن به عنوان غنیمت به این بنده خدای رئیسشون گفتن که چرا ما نریم غنیمت جمع کنیم این بیچاره اصاب کرد که رسول الله فرموده از اینجا حرکت نکنی من شکست بخورم یا قلبه پیدا کنم از اینجا حرکت نکنی شما نرید گوشناک از این رفته خود این بزرگواری که رئیسشون بود با چند نفر مختصری از این پنجانفر موند. باقی رفتن شروع کردن به عزم شد جمعوری قناعه منکزایی کفار یکیشون متوجه شد که اون سراخه اون دره خالی شده صدا زد کفار رو از اون دره حمله کردن بر مسلمان ها که در همون جنگ بود که شاید 70 کفر 80 نفر از اون مسلمان ها وید بزرگ و بزر مثل همزه و, همزه و همزال زاله اونجا شهید شدند و چند زخم بر برای بیغمبر خورد و تا 90 درخت بر بدن امیرالمومنین کرد و چی شد و چی شد و چی شد الهی ما الله. اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت رسول یعنی اطاعت برای اداره کردن فرمان امور مملکت اگه دستوری به شما داد. فرمود اینجا این باشید باید باشید اگه دستور داد جنگ کنید باید جنگ کنید اگه دستور داد صلح کنید باید صلح کنید اگر دستور داد که فلانکس قاضی باشه باید قاضی باشه اگر فلانکس دستور داد که حکمران باشه باید حاکم باشه و هر چیزی را که فرمان بده حضرت رسول الله کسی حق نداره تخلف بکنه ما کان للمؤمنین ولا مؤمناتین اذا قض الله ورسوله عمرا ان يكون لهم الخیرة من عمره. نه مؤمن نه مرد مؤمن و نه زن مؤمن حق ندارد اگر خدا یا رسولش دستوری دادن این بگه من اختیار دارم در مطلب ببینم میلم چی اقتضا میکنه که آیا بکنم این کار را یا نکنم نه مؤمنم اختیاری چه اختیار نداردا اولا والمؤمنين من انفسهم فاتع الله واتع الرسول ان تمام و اول الامر علما فرمودند بین اتع الله و الرسول اتعو الله و الرسول ولی بین رسول و اول الامر دیگه اتعو نداره الله و الرسول و اول الامر و وجهش این است که اطاعت اولو الامر از سنخ اطاعت رسوله یعنی در امور زعامت و در امور نگهداری از حوزه اسلام اگر رسول امری کرد باید اطاعت کنید از می شد هم اینن همین جوره اگر در امور خلاصش زعامت مسلمین امری از جانب رسول آمد عمر، امری از جانب اولو الامر آمد اطاعتش واجبه خب علمو میگن علمو میگن اگر بنابشه این آقایی که اول الامر شده اگر مثل پیغمبر معصوم باشه بر خلاف رضای خدای تعالی امری نمیکنه و دستوری بر خلاف رضای خدای تعالی نمیده، ده اون کرا که امرو می کند است که خدای تعالی دوست داره و مرزیگه او، اما اگر بنابشه باید اول الامر معصوم نباشه مطلبی رو دستور بدهد برخلاف دستور خدا اگر مطلبی رو برخلاف دستور خدا دستور بدهد حالا یا گناهکار باشه که به گناه امر کنه یا اشتباه کنه خطا کنه یه دستوری برخلاف دستور خدا بده آیا خدای تعالی میگه عمل کن در برطبقیه یا میگه عمل نکن خب تو آیه که میگه عمل کن الله و اتیال الرسول و از اولوال عمرو تاعت کنیم مناورین اگر انابش ازیع تاعت کنیم معنیش شنی است که عتی الله رو دیگه نمی خواد تاعت کنیم چون فرض نیست است که این دستوری داده بر خلاف دستور خدا حالا یا عمدن یا صحبن دستوری داده بر خلاف دستور خدا اگر عمدن یا صحبن دستوری بر خلاف دستور خدا داده باشه این دوتا عبادی او نمیشه شه خودش بمونه یا باید عتی او اولو الامر رو یا باید عتی او الله رو پس یقینا نمی شود که خدای تعالی امر کند به اطاعت کردن بی قید و شرط از کسی که معصوم نیست اطاعت بی قید و شرط هی قیدی براش نداشته هیچ شرطی اگر بنابرای شود اطاعت بی قید و شرط از کسی واجب باشد حتما باید معصوم باشد چنون که رسول ما اطاعت او اطاعت بی و شرط است اولو الامر اگر معصوم باشه چون که شیعه میگن اطاعتش اطاعت بی قید و شرطه و اما اگر معصوم نباشه اطیع الله با اطیع اولو الامر به قول طلبها متناقضه اطیع الله با اطیع اولو الامر متناقضه مثلا عرض میکنم کنم یزید شد اولو الامر اتی الله و اولول عم و اتی الرسول و ال عم خب اتی و یزید میگه برین ما مسلمان بکشیم حال ما بکنیم ما مسلمان ها؟ بکشیم یا نکشیم برین بکشیم که اتی او از نشه اتی الله من دهی مومن خدا رو کنهاد به خودی کش اگه بکشیم هم که اتی او اولول عم بنابراین دوتا با هم ناسازگاره یا باید اطاعت خدا بکنیم یا اطاعت اولو بکنیم پس بنابراین از وجوب اطاعت به قول مطلق که گفته مطلقا از خدا اطاعت کنیم همون گونه که اطاعت از خدا قید و شرطی نداره اطاعت مطلق از رسول بکنید همین همینگونه اطاعت مطلق از اولو بکنید اطاعت مطلق از الان رو کردن با غیر معصوم ناسازگاره زیرا غیر معصوم گاهی به گناه و گاهی به خطا امری برخلاف دستور خدا میده پس اطاعت او واجبه یا اطاعت خدا واجبه کدام هم یکی واجبه این تناقض میشه ما بین اطیع الله و اطیع او الان پس باید این الان عمر، الان امری باشد معصوم تا از خطا محفوظ بماند که اطاعت او بر ما به قول مطلق واجب باشه و به هر حال این یک کلمه خلاصه این اولول امری که اومده رو کار یه وقت به زور اومده یه وقت با شورا اومده یه وقت خدا تعینش کرده یکی از این سوره هست اولول امری که به زور اومده رو کار به قول ما کودتا کرده اومده رو کار حالا شده اولول امر اطاعتش واجب بر ما سنی ها میگن واجبه عطی الله و عطی رسول و کل اولو الامری که یده جمع شدن و به عنوان شورای فردی رو تعیین کردن اطاعتش بر ما واجبه سنی میگن واجبه زیرا اولو الامر دیگه اطاعتش واجبه ولی بنده از میکنم از قول علمای شیعه بر من اگر بنا بشه هر کسی که بیاد سر کار حالا یا به زور بیاد یا به شورا بیاد اگر معصوم نباشد و در معرض گناه و در معرض خطا و اشتباه باشه هراین امر اطیعو با امر اطیعو اول الامر با یکدیگر متناقض خواهد بود پس بنابراین باید اون قسم دیگرش باشه که این اول الامر اول الامر خدایی باشه تعیین کننده خدا باشه و خدا معصوم رو تعیین کند برای این کار که که اون وقت امرعتی امر و رسول مطلق است امرعتی و علالعمرم میشه مطلق و نتیجتا امام باید معصوم باشه البته این بحثی قدسته می هم داره انشاءالله هفته آینده است اللهم نشان <تصفيق> <تصفيق>